ماجره کشاورز و جادوگر سرخ مدت قبل از اینکه که به فکر اومدن به ایرلند بیفتن در جنوب ایرلند کشاورزی زندگی میکرد که نسبتاً ثروتمند بود چون آدمی سخت کوش و سرفجو بود و از مال دنیا سهمی عادلانه میبرد کشاورز فقط یه پسر داشت و لازم به گفتن نیست که به اون سمیمانه عشق میورزید اما به ندرت پیش میومد که پدری کار پسر صرف جویی داشته باشه این قضیه در مورد کشاورز هم صادق بود کشاورز بعد از یه عمر کار سخت بالاخره مرد چیزی که برای همه مردم اتفاق میفته و بلافاصله بعد از مرگ اون مرد جوان یعنی همون پسرش صاحب پولهای پدر شد پول زیادی بود هم طلا، هم نقره و پسر مغرور و احمق فکر میکرد که هیچ وقت اینا تموم نمیشه اون نه در فکر اضافه کردن به پول بود، نه در فکر حفظ کردن اونا و مثل آب خوردن پول خرج میکرد. پسر یه چند سالی رو به همین ترتیب با پولای پدرش زندگی کرد و پولا رو همین جور خرج کرد تا اینکه عاقبت متوجه شد همه چی تموم شده و وقتی حتی یه پنی هم براش باقی نمونده بود گوش و کنار خونه و هر جایی که به فکرش میرسید که شاید پدرش مقداری نقره یا طلا مخفی کرده باشه شروع کرد به گشتن و از بخت خوبش یک کیف پر از سکه پیدا کرد اما این پول هم کمک زیادی به اون نکرد چون به جای دست کشیدن از افکار احمقانش و شروع یه زندگی جدید مثل سابق به نوشی و قمار پرداخت و اونقدر به این کار ادامه داد که ارث پدریش به پایان رسید اون نه تنها پول و از دست داد بلکه نام نیک و عزت نفسش را هم از دست داد. اون باید زمینش رحم میداد و با وجود این قادر نبود قرز هاشو بده. با تمام این بدبختی ها باز هم سر عقل نیومد که نیومد و همون هماغت ها و ولخرجی‌های سابق رو ادامه میداد. یه روز که خسته و فرسوده به خونه برمیگشت در جاده نزدیک خونش یه پیرمرد ظاهراً نیمه دیوانه رو دید. پیرمرد پشت یه پرچین بلند با خیال راحت نشسته بود. اون دو با هم گرم حرف زدن شدن. پیرمرد به اون گفت که اسمش جادوگر سرخه و از زمان تولدش علاقه زیادی به تاسبازی و قمار داشته و از جوان پرسید که آیا حاضره که با اون بازی کنه کشاورز قبول کرد و گفت ولی پول زیادی برای شرط بندی ندارم جادوگر سرخ به اون گفت؟ دست از دعوا و وراجی و نوشیدن در مهمونی و جشن بردار. کسی که سکه رو جیرینگ جیرین برای نوشیدنی روی پیشخان میریزه، به زودی زود روزی میرسه که پولهای بی صاحبش به باد میره. بعد مجبوره که برای یه لغم نون خونه به خونه بره و گدایی کنه. کشاورز گفت نصیحت خوبی بود، البته اگه میتونستم به اون عمل میکردم جادوگر آدم باهوشی بود میدونست چطور با کمک جادو حقه های هوشمندانه بزنه اون از هر فرصتی برای شرارت و بدجنسی استفاده میکرد اما کشاورس فکر میکرد که اون مرد فقیر صادق و درست کاره جادوگر یه تاس از جیبش در ورد و اون دو نفر مشغول بازی شدند قرار بر این شد که در برابر هر یک سکه‌ای که کشاورس شرط میبنده جادوگر صد سکه بذاره و کشاورز از این قرارداد بسیار خوشحال بود. تولی نکشید که کشاورز مبلغ زیادی برد و جادوگر همه رو طبق قرار به اون پرداخت کرد. کشاورز با ای بالا و امیدوار به خونش رفت. از اون لحظه به بعد کشاورز عاقلتر شد و هر قراری که میزاشت به اون عمل میکرد و به طور مرتب هم سر کارش حاضر میشد. چند وقتی گذشت تا اینکه یه روز کشاورز دوباره جادوگر سرخو دید. اونا مدت کوتاهی با هم حرف زدن و بعد جادوگر سرخ از اون خواست تا یه بار دیگه با هم بازی کنن. کشاورز پرسید: "اگه ببری از من چی میخوای؟ بهتر قبل از شروع قرارمونو بذاریم." جادوگر گفت: "این بار سر پول بازی نمیکنیم، اما شرایطمون رو زمانی اعلام میکنیم که برنده معلوم شده باشه." کشاورز گفت: "بسیار خوب، حرفی ندارم." اونا با دقت و جدیت بسیار شروع به بازی کردند. تا اینکه در پایان کشاورز برنده شد جادوگر گفت بدشانسی آوردم و فکر میکنم تو کلک زدی اما عیبی نداره قول میدم یه روز جواب این کارت رو بدم ولی حالا به گوچه تاوانی از من میخوای کشاورز گفت تو رو متعهد میکنم که از حالا تا دو هفته زیباترین زن دنیا رو به خونه من بیاری تا باهاش ازدواج کنم جادوگر گفت کار سختیه و منو تو وضعیت خیلی سختی قرار میدی، اما فکر میکنم که بتونم رضایتت رو جلب کنم. کشاورز از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد و روزهای باقی مونده تا زمان موعود رو به شادی گذرند. صبح اون روز دختر خدمتکار به اتاق کشاورز اومد و گفت که زنی جوان که در ظاهر و رفتار مثل شاهزاده هاست در سالن منتظرشه و اضافه کرد که تا حالا هرگز چنین زن زیبایی را ندیده کشاورز با شتاب به دیدن زن رفت در اول به نظرش رسید که خانم محترم از اون وحشت کرده اما کشاورز با اون چنان نرم و دوستانه حرف زد که ترس زن ریخت اونا با هم ازدواج کردن و تا بیست سال خوشبخت و شاد بودند، اما کشاورز یه بار دیگه حوض کرد تا بره و با جادوگر بازی کنه همسرش به او گفت به عقیده من اگه باز هم به سراغ جادوگر بری به دردسر سر اما تلاش همسر برای متقاعد کردن شوهرش فایده ای نداشت کشاورز توی شب خوب و زیبا از خونش خارج شد و به امید ملاقات با جادوگر به دره ای رفت که اون معمولا اونجا می نشست کشاورز اشتباه نمیکرد چون جادوگر همون جای همیشگی زیر پرچین نشسته بود جادوگر از کشاورز به خوبی استقبال کرد و از اون پرسید که بعد از آخرین دیدارشون چه اتفاقایی افتاده کشاورز هم همه چیزو مو به مو براش تعریف کرد و در حالی که مشغول صحبت بودن جادوگر بی مقدمه گفت که خیلی دوست داره یه بار دیگه با هم بازی کنن و به هیچ وجه نمیتونه در برابر این هوس شیطانی مقاومت کنه و ادامه داد بیایید دست بازی کنیم و شرطمون هم مثل آخرین باری باشه که بازی کردیم کشاورز نیازی به اصرار جادوگر نداشت و اونا برای بار سوم مشغول بازی شدند. اما قبل از شروع شرط بستن که هر کس برد میتونه هر جریمه ای که دلش خواست و برای طرف مقابل تعیین کنه هرچقدر که کشاورز خودشو زرنگ میپنداشت جادوگر سرخ به مراتب زرنگتر و باهوشتر از اون بود این بار هنوز مدت زیادی از بازیشون نمیگذشت که جادوگر سرخ برنده شد کشاورز از ترس لرزید و بیهوش نقش زمین شد اما یه رو بد به هوش اومد و از فکر جریمه ای که جادوگر سرخ ممکن بود براش مقرر کنه سخت به لرزه افتاد. جادوگر گفت: حالا بلند شو تا بگم چه جریمه ای باید بدی. کشاورز در حالی که بلند میشد گفت فورم بگو از من چی میخوای چون فکر میکنم کنم چارهای به جز انجام دادنش ندارم جادوگر گفت: من تو رو متعهد می کنم که بفهمی چه کسی قایق طلایی رو دزدیده و چه کسی عدود قول رو کشته و باید شمشیر نورانی رو از جنگجوی جوان در دنیای شرق بگیری و از امروز یک سال و یک روز وقت داری که اونو برای من بیاری حالا خدا و بدون که در این مدت راه سختی رو در پیش داری ورز با قلبی سنگین از غم به خونش رفت بعد از مدتی همسرش فهمید که چیزی فکر اونو مشغول کرده و حتمی میزد زد که باید حقه های شیطانی جادوگر باعث این مسئله شده باشه. ازش پرسید که بعد از ترک خونه چه کردی و چه اتفاقی افتاده که اینقدر غمگینی کشاورز می دونست که همسرش خیلی باهوشه و در واقع از نظر هوش و ذکاوت دست کمی از جادوگر نداره و درست نیست که حقیقت رو ازش مخفی کنه بنابراین بهش گفت و گفت که باخته و چه جریمه وحشتناکی براش تعیین شده و ادامه داد تمام زجر و عذابی که میکشم به همین دلیله زن گفت اگه به نصیحت من گوش میکردی و به جادوگر نزدیک نمی شدی حالا این حرفا رو نمیزدی به هر حال حالا تو این دام خطرناک افتادی و اسیر اون شدی اما من بهت میگم که چه کار کنی و شاید موفق بشی. جواب سوالای اونو پیدا کن و شمشیر نورانی رو از جنگجوی جوان دنیای شرق براش بگیر ولی باید شجاع باشی و هرچی میگم انجام بده و بدون که جنگجوهای بسیاری جان خودشون رو سر انجام این سه گذاشتن بعد به اون گفت که چه کار باید بکنه بعد با ترنم موسیقی ملایم اونو خوابوند. صبح روز بعد اول وقت همسر کشاورز بیدار شد و غذایی برای شوهرش آماده کرد تا با خودش ببره وقتی غذا آماده شد به دشت رفت و نخ بلندی رو از جیبش در آورد و اون رو در باد معلق کرد و یک یا دو بار با صدای بلند فریاد زد طولی نکشید که یه اسب قهوهی تند رو به طرفش اومد اسبی زین شده و آماده زن اسب رو به حیات استبل و پیش شوهرش برد و گفت اکنون زمان حرکت دعای خیر من بدرقی راهته کشاورز با همسرش خدافیزی کرد سوار اسب شد و به محض قدم گذاشتن به جاده سیل عشق از چشماش جاری شد اسب با سرعت باد پیش میرفت و کشاورز نمیدونست به شرق میره یا به غرب چون اونقدر اسب سرعتش زیاد بود که اون به سختی میتونست چیزی رو ببینه وقتی به ساحل دریا رسیدن اسب از حرکت نایستاد اون به سبکی یه عقاب از بالای کوها گذشت و روی امواج دریا به پرواز در اومد و طولی نکشید که از بندر هم دور شدند کشاورز اونقدر به سفرش ادامه داد که خورشید غروب کرد و تاریکی شب همه جا رو گرفت در همین موقع اونها دوباره به ساحل رسیدن و اسب سریعتر از پیش به حرکتش ادامه داد اون هرگز از سرعتش کم نکرد تا به چمنزاری هموار و سبز جلوی قصر رسیدن. قصری بلند و بزرگ که به تازگی آهکندود شده بود. اسب شیه کشید و کشاورز فهمید که اون حتما در حال خبر کردن ساکنین قصره. چون در فورا باز شد و تعدادی خدمتکار بیرون اومدن، اسب اونو گرفتن و خودشو به تالار قصر هدایت کردن. قصر متعلق به پادشاه اون کشور بود، پادشاه به همراه همسرش به استقبال کشاورز اومدند و به او صد هزار بار خوش آمد گفتند. اونا گفتند که پدر و مادر همسرش هستند و از اون درباره دخترشون پرسیدند و اینکه آیا زندگی در اونجا رو دوست داره یا نه. بعد اونها برای کشاورز غذا و نوشیدنی آماده کردند و کشاورز به اونا گفت که قصد رفتن به دنیای شرق رو داره و از اونها راهنمایی خواست. پادشاه گفت راستش جادوگر سرخ و جنگجوی جوان و من با هم برادریم. با وجود اینکه جادوگر سرخ از هممون جوان تره اما حیلگر و بدجنسه و همیشه علیه ما کار میکنه. اون به شمشیر نورانی که متعلق به جنگجوی جوانه تمع کرده و از من خواست که در سرقت شمشیر به اون کمک کنم اما من هیچ علاقه ای به آزار برادرم نداشتم چون اون مرد خوب و مهربانیه و آزارش به کسی نرسیده. در سراسر سر زندگیش کارهای خوب و شجاعانه زیادی انجام داده بنابراین او با دزدیدن دخترم و بردنش از من انتقام گرفت و برای اینکه از جنگجوی جوان هم انتقام بگیره با تو تاس بازی کرد تا تو رو به دام بندازه و برای آوردن شمشیر نورانی و یافتن پاسخهای سوالات پنهان بفرسته جادوگر جوان در دژ مستحکم در دو اینجا زندگی میکنه دور تا دور این دژ دیوارهای بلندیه و پشت دیوارا اژدهاهای درنده دائما نگهبانی میدن و اگه تو رو بگیرن زنده زنده میخورن اگه روز اول و دوم تونستی از دستشون فرار کنی از اون به بعد دیگه از اونا ترسی نداشته باش اون دژ مکان امنی برای جنگجوی جوانه و هیچکس کس اجازه نزدیک شدن به اونو نداره مگر اینکه اژدهاها او رو بشناسن اگه سوار اسبی بشی که من به تو میدم، اون تو رو از روی دروازه عبور میده. مهم نیست که چه کسی تو رو میبینه. با صدای بلند فریاد بزن و بگو که شمشیر نورانی رو میخوای و همچنین میخوای بدونی که چه کسی قایق طلایی رو دزدیده و چه کسی قول رو کشته. بعد از اون حتی لحظه ای توقف نکن و دهنه اسبت رو بچرخون و با آخرین سرعت به اینجا برگرد. صبح روز بعد کشاور سوار عصبی شد که پدر زنش بهش داده بود و شجاعانه تاق تا پشت دیوارهای بلند دژ رسید. اون وقت اسب سرش رو بالا گرفت و مثل یه پرنده به هوا بلند شد. به سبکی از روی دیوارا پرید و قبل از اینکه کسی از ورودش با خبر بشه کشاورز فریاد زد که شمشیر نورانی رو میخواد و همچنین میخواد بدونه که چه کسی قایق طلایی رو به سرقت برده و چه کسی قول رو کشته. در همین لحظه اجتهاها چنان نعره خشمناکی کشیدن که دیوارهای بلند اطرافشون به لرزه در اومد و اون وقت با دهنهای باز به سوی کشاورز حمله کردند تا اونو زنده زنده قورت بدن کشاورس بی‌معطلی اسبش رو چرخوند و اون رو به سوی دیوارها روند اسب با یه پرش از روی دیوار پرید اما هنگام فرود دو پای عقبش شکست کشاورز پای پیاده به راه افتاد و های شب به قصر پدرزنش رسید اما هیچ زخم یا خراشی بر تنش نبود و همه از اینکه سالم برگشته بود خوشحال شدند کشاورز روز بعد سوار بر اسب دیگه‌ای که از پدرزنش گرفته بود شد و به دژ برگشت این بار هم از روی دیوار پرید دو سآلش رو با صدای بلند پرسید و شمشیر نورانی رو طلب کرد. اما هنوز حرفش کاملا تموم نشده بود که اجدهاها با دهنهای باز نعرکشان به اون نزدیک شدند. اون در لحظه آخر از آرواره های آنها فرار کرد و اسب با جهشی بلند از روی دیوار رد شد. اون شب هم تمام ساکنین قصر صد هزار بار به اون خوشامد گفتند. روز سوم پادشاه به کشاورس گفت امروز تمام اجدهها ها خوابیدن، نگهبانی بیوقفه در دو روز گذشته اونا را از پادر آورده و اصلا متوجه ورود تو نمیشن. مستقیما به در دش مستحکم برو و مطمئن باش که اونجا به هر چی میخوای میرسی. کشاور سوار اسب پرکت کرد و به اونچه پدرزنش گفته بود عمل کرد. اون از در دش وارد شد. هیچکس جلوشو نگرفت. اجده ها همگی خواب بودن، خوابشون هم سنگین بود. وقتی اون تصادفا پای یکی از اونا رو لگت کرد، حیوان اصلا تکون نخورد و همچنان خورناس می کشید. کشاورز وارد تالار زیبا و بزرگ دش شد و احساس کرد که به زیباترین و و خوشساختترین قلعه دنیا قدم گذاشته. انتهای تالار پلکان عریزی رو در برابر خودش دید و از اون بالا رفت. در یکی از اتاقهای طبقه اول صدای حرف زدن چند نفر و شنید. در اون اتاق زد و اجازه ورود خواست. مردی که در او باز کرد گفت بفرمایید و خوش اومدی، چون تو موفق شدی تمام استحکاماتی رو که از ما محافظت میکرد از میان برداری استحکاماتی که فکر میکردیم در برابر هر حمله ای مقاومه ما هم میتونیم به تو اجازه ورود بدیم حالا بشین و به ما بگو اهل کجایی و چرا به این فکر افتادی که به اینجا بیای و به ما حمله کنی کشاورز گفت من از راه دوری به اینجا اومدم مرد گفت ای کاش نمی اومدی اما چون شجاعت و مهارت زیادی از خودت نشون دادی تو رو سرزنش نمی کنیم چه بسیار جنگجوهای شجاعی که در تلاش برای ورود به این دش جان خودشونو از دست دادن کشاورز گفت و حالا که وارد شدم به شما میگم که چه میخوام و چرا به اینجا اومدم من شمشیر نورانی رو میخوام و میخوام بدونم که چه کسی قایق طلایی رو دزدیده و چه کسی ادود قولو کشته مرد گفت فکر میکنم تو از قبل میدونستی که من جنگجوی جوان هستم شمشیری که اونجا روی دیوار آویزون شده شمشیر نورانیه میتونی اونو به عنوان هدیه از طرف من برداری این شمشیر چنان نوری از خودش پخش میکنه که تو تاریکی شب هر کی نزدیک اون باشه مثل روز روشن خوب و واضح دیده میشه حالا به تو میگم که قایق طلایی رو چطور به دست آوردم و ادودغول رو چطور با زور بازوم اینجا کسی به جز همسر من به حرفهای من گوش نمیده و اگر چیزی غیر از حقیقت رو بگم اون میتونه با سخنانم مخالفت کنه زمانی که جوان سالم و خوش قیافه ای بودم به این فکر افتادم که به دیدن مردمان دیگر و کشورهای دور برم و بفهمم اونا چطور زندگی میکنن بنابراین سوار قایق شدم و در امتداد سواحل دنیا پیش رفتم تا اینکه به یونان رسیدم اونجا با پادشاه یونان آشنا شدم اون دختری داشت که در زیبایی بینظیر بود هنوز مدت زیادی از اقامتم در اونجا نگذشته بود که آشقش شدم و با رضایت پدر و مادرش با هم ازدواج کردیم اما چون دوست ندارم در جایی غیر از سرزمین مادریم زندگی کنم از اون تقاضا کردم که با من به خونم بیاد اون تقاضا رد کرد و گفت که هیچ اهمیتی به من نمیده من توجهی به حرفش نکردم چون میدونستم که جوونه والدینش اونو نصیحت کردن که همراه من بیاد و برای ترغیبش به این کار پدرش یه عصای جادویی رو که از سالها قبل پیش خودش داشت به اون هدیه داد اما همسرم گفت که تا نخست با اون در دنیای شرق زندگی نکنم با من نمیاد من هم همین کارو کردم اما اون با خودخواهی ها و بدخلقی‌هاش منو عذاب میداد تا اینکه یه روز وقتی به خواسته‌اش عمل نکردم با عصای جادوییش به من زد و منو به اسب تبدیل کرد ولی با این وجود من فکر و حواس انسانیم رو از دست ندادم و هر روز گاهی به کسانی که میخواستن سوارم بشن لگد میزدم و اونا رو زیر سمهام مینداختم گاهی هم کسایی که نزد من میومدن با دندونان پاره پارشون میکردم و به این ترتیب خبر بدخلاقی من همه جا پیچید و همه از من میترسیدن و زندگی خوب و راحتی داشتم زنم از این بابت ناراحت بود چون دوست داشت من سخت کار کنم یه روز که داشتم زیر یه درختی با آرامش و رضایت حمام آفتاب میگرفتم، پیش من اومد و گفت تو حق نداری اینجا بیکار بشینی؟ بعد با میخ به پشتم زد. خشم بر من قلبه کرد چون دائما آزارم میداد و دیگه قادر به تحمل این بیحرمتی نبودم. بنابراین با لگت به پیشونیش زدم و اون بیهوش نقش زمین شد. یکی از خدمتکارا اونو پیدا کرد و به خونه برد. و اون بعد از مراقبت زیاد بهتر شد و نیروش رو دوباره پیدا کرد. اما این برای من خبر خوشحال کننده ای نبود چون مطمئن بودم تا منو نابود نکنه یه لحظه هم آروم نمیگیره. یه روز که تنها بودم پیشم اومد و دوباره اصای جادوییش رو به من زد و منو تبدیل به گرگ کرد. بعد سگا رو دنبال من فرستاد و من تونستم با سرعت زیاد از دستشون فرار کنم اما عاقبت منو گرفتن و اگه پادشاه یونان نرسیده بود منو تکه تکه کرده بودن پادشاه نمیدونست که من چه کسی هستم چون همسرم مدت قبل به اون گفته بود که من به دنیای غرب رفتم و هیچ خبری از زنده یا مرده بودنم نداره من به بهترین نحوی که میتونستم به اون تعظیم کردم پادشاه اثر عشق رو روی گونه های من دید و دلش به حالم سوخت. اون احساس کرد چیز خاصی در حرکات من وجود داره من اونو تا خونه دنبال کردم و روز به روز به همدیگه بیشتر علاقه من شدیم همسرم از این بابت خشمگین بود چون نمیتونست منو بکشه تمام سعیشو کرد تا پدرشو راضی کنه که منو از اونجا دور کنه اما فایده ای نداشت چون پادشاه هیچ اهمیتی به حرفای اون نمیداد من چون خیلی رام و آرام بودم معمولا در همون اتاقی بودم که بچهمون تو گهوارش می خوابید. یه روز همسرم وارد اتاق شد و مقداری خون روی من پاشید و مقداری بیشتری هم به بچه که خواب بود مالید تا همه فکر کنن که من قصد جون اونو داشتم. بعد داد و فریاد کرد تا اینکه پدرش و بقیه ساکنین قصد صداشو شنیدن و همه اومدن تا ببینن چه چیزی اونو ناراحت کرده. اون از من بدگویی و شکایت کرد و گفت که من به بچه حمله کردم و اگه موفق نشده بود از دست من نجاتش بده حتما اونو کشته بودم. اونو همه به من حمله کردن و چیزی نمونده بود جونمو بگیرن اما پدر زنم پادشاه یونان گفت که بهتر منو آزاد کنن و به من فرصتی بده تا به جنگل برگردم و اونجا زندگی کنم. از وقتی اونجا رو ترک کردم سختی و بدبختی زیادی کشیدم. از گرسنگی و تشنگی رنج زیادی بردم و هیچ سرپناهی نداشتم. یه روز تصمیم گرفتم به کنار دریا برم به این امید که امواج ماهی یا لاشه ای رو به ساحل بیاره و به وسیله اون گرسنگیمو برطرف کنم. وقتی داشتم روی سخره بلند کنار دریا راه میرفتم از صدای رعداسای برخورد موجها به سخره ها وحشت کردم. چشمم به کشتی زیبایی خورد که نظیرش رو هیچ کس در دنیا ندیده. کشتی در حالی که روی امواج دریا بالا و پایین میرفت به من نزدیک شد. به طرفش شنا کردم چون حدس میزدم اطرافش تک نونی یا گوشتی یا چیز دیگه ای پیدا کنم. وقتی به کشتی نزدیک شدم روی عرش مردی رو دیدم که سرگرم ماهیگیری بود، شناکنان به طرف پاشنه کشتی رفتم و زیر چوب ماهیگیری قرار گرفتم و به محض اینکه از زیر اون رد شدم هم صورت ظاهر و هم طبیعت انسانی خودم را پیدا کردم نمیدونم با چه کلماتی خوشحالی بیش از اندازه خودم رو در اون لحظه که دوباره به قالب انسان برگشتم بیان کنم. مدتی اطراف کشتی شنا کردم و بعد با آخرین توان فریاد زدم و طلب کمک کردم تا کسی منو از آب بیرون بکشه. یه نفر که من نمیتونستم اونو ببینم یه تناب رو از بالای کشتی برام پرت کرد و بعد از اینکه تناب رو گرفتم منو به روی عرشه کشید. هیچ کی تو کشتی نبود مگر دو پسر بچه به همراه پدرشون اونا ادود قول و دو پسرش بودن که روی کشتی تفریح میکردن اونا فکر کردن من دزدی که برای سرقت اومدم و به من حمله کردن من مجبور شدم از خودم دفاع کنم و ادود قول را کشتم بعد از اون دو پسرش رو به کشور خودشون فرستادم و از اون لحظه تا کنون هیچ خبری از اونا ندارم وقتی کشتی رو میگشتم شمشیر نورانی رو پیدا کردم و تا حالا به هیچ قیمتی از اون جدا نشدم هرچند که خیلی ها حاضر بودن تخم چشم خودشونو بدن و این شمشیر رو از من بگیرن اما هیچکی به اندازه جادوگر سرخ خواهان این شمشیر نبوده و برای به دست آوردنش تلاش نکرده من هم برای خلاص شدن از شر اون مرد هیلگر این دژ مستحکم رو ساختم از تحولی که تو زندگیم ایجاد شده بود اونقدر خوشحال بودم که به ملاقات پدرزنم پادشاه یونان رفتم تا به اون بگم که چه ظلمی در حقم شده اون به محض اینکه منو دید در آغوشم گرفت و به گرمی خوشامد گفت و همسرم در برابرم زانو زد و تقاضای بخشش کرد از اینکه دیدم چقدر از کار خودش پشیمونه دلم به رحم اومد و از ترس اینکه مبادا کسی اونو سرزنش کنه گفتم که آماده ام مجددا اونو به همسری انتخاب کنم از اون لحظه تا کنون زنی به خوبی اون ندیدم و حالا تو میدونی که چه کسی قایق طلایی رو, رو بوده و چه کسی دوود گلو کشته، شمشیر نورانی هم از آن توست به همراه دعای خیر من. کشاوررز بعد از خداحافظی با جنگجوی جوان مدتی را با پدرزن و مادرزنش گذروند و بعد راه خونش رو در پیش گرفت و بعد از یک هفته قبل از این جادوگر سرخ به بستر بیماری افتاده بود و مرده بود. بنابراین این کشاورز میتونست شمشیر نورانی رو پیش خودش نگه داره همسرش با خوشحالی از اون استقبال کرد و سر پاش و پاشو غرق عشق کرد اونا بقیه عمر رو با خوشبختی و کامیابی سپری کردند و باشد که ما هم به اندازه اونها خوش و خوشبخت زندگی کنیم پایان کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی <متصفيق> نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام ای سلش نشانی وبلاگ ما m i h r